خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم به صورتت و نگاری ندیدم و نشنیدم اگر چه در طلبت هم انان باد شمالم به گرد سر بخرمان قامتت نرسیدم امید در شب زلفت به روز عمر نبستم طمع به دور دهانت ز کام دل ببریدم به شوق چشمه نوشد چه قطره ها که پشاندم ز لعل باد فروشد چه اشبها که خریدم ز غمزه بر دل ریشم چه تیرها که گشادی ز قصه بر سر کوید چه بارها که کشیدم ز کوی یار بیاری نسیم سوق و که بوی خون دل ریش از آن تراب شنیدم گناه چشم سیاه تو بود و گردن دلخواه که من چو آخوی وحشیز آدمی برمیدم چو قنچه بر سرم از کوی او گذشت نسیمی که پرده بر دل خونین به بوی او بدریدم به خاک پای تو سوگند و نور دیده ی حافظ که بیر و خط و فروغ از چراغ دیده ندیدم.